نام خالر ها و قصه های زندگی آن یگانه بی همتا خدایی که در همین نزدیکی هاست ها سلام ارامنه از کهانترین ملت های روی زمین به شمار میرند و خط رسم بسیار کهانونها از فرهنگ کوهن ارمانی حکایت داره که بدون شک تأثیر اون رو همراه با فرهنگ های ملل دیگه نمیشه در تکامل تمدن بشری نادیده گرفت. در هزار افسان افسان ای را از سرزمین کوهن ارمنستان برای شما نر میکنم به نام ارباب و نوکرش بر از کتاب پس ها و باورها تعلیف آقای دکتر احمد بیانی در اوسایی کوچک و دور افتاده ای در گوشه ای از سرزمین ارمنستان اربابی زندگی میکرد که نوکری به نام پتریس داشت پتریس، سالهای زیادی بود که برای ارباب کار میکرد اما ارباب که بسیار کار بود هیچ وقت مزه اونو کامل نمیداد و هر وقت پتریس برای گرفتن دستمزدش نزد اون میرفت، به پتریس وعده و ویدهای زیادی میداد که هیچ وقت به اونا عمل نمیکرد. پتریس از این وضعیت خیلی ناراحت و ناراضی بود و بالاخره هم صبرش سر اومد و برای گرفتن حق خودش از ارباب به دادگاه شکایت کرد اما دادگاه هم نتونسته اختلاف ارباب و پتریس رو حل کنه به همین علت کارشون به دادگاه ای محول شد اما اونا هم نتونستن به شکایت ارباب و پتریس رسیدگی کنند. روزها می گذشت و کار از دادگاهی به دادگاه ای کشیده میشد و سرانجام این ماجرا به گوش پادشاه رسید پادشاه ارباب و نوکرش پتریس رو احزار کرد تا شخصا میون اونها داوری کنه صفه زود با خاموشی آخرین ستاره در آسمون ارباب و پتریس به طرف کاخ پادشاه حرکت کردند ارباب هیکل چاق و پهنش رو به کندی به جلو می کشید و چند قدم جلوتر از پتریس که اندامی لاغر و کشیده داشت در حال حرکت بود هوا خنک بود و مطبوع و نسیم ملایمی در حال وزیدن بود پتریس در حین راه رفتن وسط جاده مورچهٔ سیاه درشتی رو دید که دونه گندمی رو آروم آروم با خودش پیش میبره اون بدون توجه به زیر پاش خواست قدم دیگه ای برداره اما صدای ضعیفی اونو از این کار باز داشت مورچه با صدای ضعیفی گفت صبر کن صبر کن پتریس، چشاش رو به مرچه سیاه و درشت دوخت و زیر لب گفت چه با مزه سیاه و درشت با همون صدای ضعیف گفت خواهش میکنم پا تو روی زمین نذار من باید هر هرچه زودتر این گندم رو به بچه های برسونم اونا منتظر منن پتریس دلش با حال مرچه سیاه و درشت سوخت و آروم و با احتیاط جهت قدمهاش رو تغییر داد ارباب نگاهی به پتریس انداخت و با خنده گفت <تصفيق> چه آدم دیوونهی دلش به حال یه ملچه بی ارزش می <میسوس> <میسوس> صداش بلند کرد و گفت اینجوری پیش بریم تا شبم به حضور پادشاه نمیرسیم پتریس من باید هرچی زودتر تکلیفم رو با تو روشن کنم حالا حالا زودتر را بیفت و دست از سر این مرچه بی ارزش بردارد هرباب از پتریس خیلی فاصله گرفت پیکر چاو و پهنش از دور باریکتر به نظر می رسید پتریز قدم هاشو کرد و خودشو به عرباب رسند ارباب همچنان زیر لب قرلند می کرد هوا داشت رو به گرمی می رفت اونا راه زیادی در پیشن داشتن و کرش پتریس راه زیادی رفتن ارباب که نفسش به شما افتاده بود و عرق از سر صورتش سرازی شده بود با زحمت زیادی خودش خودشو به برکه آبی که در چند قدمی، اونها دیده میشد رسوند و چند مشت آب به صورتش زد و گفت آخش خداک شدم و بعد پاچه های شلوارش رو بالا زد و پاهای چاق و گوشتالودش رو توی برکه گذاشت پتریس هم جلو اومد و مشتی آب به صورتش زد و با سراستین لباسش خیسی صورتش رو گرفت نگاه خسته ارباب انتهای جاده رو اندازه میگرفت. ارباب به سختی تکونی به خودش داد و پرسید آه، راه زیادی مونده نه؟ و برای شنیدن جواب نگاهش رو به طرف پتریس کشید پتریس به برکه آب زده بود توی برکه زنبوری در حال قرش شدن بود زنبور تند و تند پرپر میزد ولی هر لحظه بالهای ظریفش خیس و خیستر در میشد. ارباب که سکوت و بی اعتناگی پتریس رو دید با عصبانیت فریاد زد آی با تو هم میگم راه زیادی مونده نه؟ پتریس با بیه و سرگی سری داد و دوباره به زنبور افتاده در برکه خیره شد بد دلش برای اون سوخت و با احتیاط با سرنگشت دستانش زنبور رو گرفت و از برک یاب بالا آورد و اونو در گوشه گذاشت تا بالهای زریفش زیر آفتاب گرم و درخشان خشک خودشو به بجوشیکش کشوند، سفره غذاشو پنگ کرد و بدون اعتنا یا تعارفی به پتریس با ولع تمام شروع به خوردن غذا کرد پتریس هم گرسنه بود ولی چیزی برای خوردن نداشت چندی گذشت ارباب همچنان در حال خوردن بود گرسنگی پتریس بیشتر و بیشتر شد با زفت نگاهی به اطراف انداخت و روی تکدرختی کبوتر سفیدی نگاهش رو ثابت نگه داشت پتریس با خوشحالی گفت آه باید گوشت لذیذی داشته باشه این یه شانس عالیه با احتیاط به طرف کبوتر رفت و خواست اونو شکار کنه ولی کبوتر با خواهش و التماس از پتریس خواست که اونو شکار نکنه این بار هم دل مهربون پتریس به رحم اومد و از شکار کبوتر سخه نظر کرد. ارباب دست از خوردن کشیده بود و سیر و شاداب آماده رفتن بود. اونا باز هم به راه افتادند و بالاخره به کاخ بزرگ و مجلل پادشاه رسیدن. نگهبانان کاخ اونا رو یه راست به سالن بزرگ کاخ دعوت کردند. ارباب و پتریس هر دو محو تماشای اطراف خودشون بودن که جوونی از در کند کاری شدی چوبی تالار وارد شد و خطاب اونها گفت بفرمایید پادشاه منتظر شماست ارباب و پتریس به دنبال جوون برافتادن. چند لحظه بعد اونها در مقابل پادشاه بودن پادشاه که اندامش مثل ارباب چاق و گوش بود با صدای دورگه گفت خوب جریان این شکایت و دادخواهی چیه؟ ارباب به تندی شروع به صحبت کرد اونقدر گفت و گفت و گفت که پادشاه از حرافی اون کلافه شد و فریاد زد بس کن مردک حسنه منو سر بردی بس کن و بعد نگاهی به پتریس که آروم در گوشه ای ایستاده بود انداخت و گفت خب بگو ببینم تو چرا از این مرد شکایت داری بگو پتریس جلوتر اومد و با احترام گفت قربان من سالهای زیادیه که برای این مرد کار میکنم ولی اون هیچ وقت دست منو کامل نمیده و منو با وعده و وعیدهای دروغین دست به سر میکنه پادشاه با عصبانیت نگاهی به ارباب انداخت و گفت ای مردک چرا دست مزه کامل این مرد رو نمیدی ارباب که دید پادشاه حرف پتریس رو پذیرفته و لحظه محکومیت و اون فرار به فکر چاره افتاد و بالاخره تصمیم گرفت که به پتریس بیچار تهمت بزنه و بالاخره با دست با گفت قربان قربان این مرد ادعا داره که میتونه محصول گندم انبارهای شما رو در عرض یک روز پاک کنه و تو کیسه بریزه پادشاه از این ادعا خوشش نیومد و با غذب پتریس که از شنیدن این تهمت حاج و واج مونده نگاهی انداخت و گفت که ادعا می تمام جندم های انبار منو یه روز پاک کنی پتریس با صدای لرزانی گفت غربان من بمخشید من هیچ وقت چون این ادعایی نداشته و ندارم جلو اومد و به پادشاه گفت قبله آلم سلامت باد اون همیشه این ادعا رو داشته و داره به توجه نکنیم پادشاه که هر لحظه بر شدت خشمش افسوده میشد به پتریس نزدیک شد و گفت اگه نتونی ادعا تو ثابت کنی دستور میدم تو رو بکشن فهمیدی؟ بکشن پتریس بیچاره هرچه گفت که هرگز چون این ادعایی رو نداشته و ارباب دروغ میگه در دل سنگ پادشاه اثری نکرد که نکرد. و مأموران پادشاه هم پتریس رو به انبار گندم بردن و از اون خواستن تا تموم گندم ها رو تا فردا پاک کنه و تو کیسه بریزه. چشم پتریس بیچاره از دیدن اون همه گندم تو انبار سیاهی رفت اون هیچ وقت فکر میکرد که در دنیا این همه گندم هم وجود داشته باشه اون بیاده مردمی افتاد که گرستنگی این کشن ولی به خاطر نداشتن گندم مونی برای خوردن ندارن پتریس در گوشه نشست و به فکر رفت ساعتی گذشت و پتریس هنوز نمیدونست که چیکار باید بکنه با پاک کردن این همه گندم تازه پاک کردنش تو فردا هم کار غیر ممکنی بود پتریس سخت در اندیشه بود که یه دفعه مرچه از یه گوشه یه بار بیرون اومد و گفت من همون مرچه هستم که تو منو زیر له نکردی یادته؟ پتریس نگاهی به موش انداخت و آرون گفت آره،, آره آره آره آره یادمه مورچه گفت من خوبی تو رو فراموش نکردم و الان اومدم که به تو کمک کنم پتریس پوسخندی زد و با مهربونی گفت آخه تو یه دونه مورچه چه کاری میتونی انجام بدی ها؟ من باید تا فردا این همه رو کیسه کنم وگرنه پادشاه منو میکشه موشه گفت نگران نباش ما این کار رو برای تو انجام میدیم و در عرض چند لحظه سیلی از موچه های ریز و درشت از سوراخهای زیر دیوارها به داخل انبار سرازی شدند موچه ها بدون فوت وقت شروع کار کردند پتریس با تجب و ناباوری به تکاپوی موچه ها نگاه میکرد هنوز شب تموم نشده بود که تمام گندم ها پاک شده و تو کیسه ها ریخته شد خبر پاک شدن گندمها، اون هم در عرض چند ساعت به گوش پادشاه رسید پادشاه از تجب به فکر فرو رفت و ارباب دروغو دوباره رو کرد به پادشاه و گفت لبله عالم به سلامتی باد این نوکر من یه ادای دیگه هم داره پادشاه تو یه چشمای ارباب خیره شده پرسید چه دایی؟ با گفت قربان قربان اون ادعا میکنه که میتونه به تنهایی یه پل محکم روی رودخونه بسازه پادشاه به پتریس نزیک شده گفت پس ادعا میکنی که میتونی به تنهایی یه پل محکم روی رودخونه بسازی نه؟ این بار هم پتریس محکوم به اجرای ادعایی شد که هیچ وقت اونو به زبون نگورده پتریس با درموندگی به کنار رودخونه رفت و به جریان آروم آب چشم دوخت و به فکر فرو رفت در همین لحظه زنبوری پروازکنان پیش پتریس اومد این همون زنبوری بود که پتریس اونو از غرق شدن در آب نجات داده بود زنبور روی شونگ پتریس نشست و گفت دوست بهربان ساختن پر رو به عهده من بذارم پتریس پوزخندی زد و با مهربونی گفت <تصفيق> تو چجوری میتونی پل بسازی؟ این کار بیر ممکنه زنبور وزوزی کرد و گفت ولی من این کار رو برای تو انجام میدم حالا برو و کمی استراحت کن و نگران ساختن پل نباش و بعد پرواز از پتریس دور شد پتریس سخت احساس گرسنگی میکرد و از شدت گرسنگی خواب به ششماش نمی صدای بال بال زدن کبوتری توجهش رو به خودش جلب کرد بله پتریس کبوتر آشنای خودش رو شناخت کبوتر برای پتریس مقداری غذا آورد پتریس در دل از وفاداری این حیوانات بسیار خوشحال بود غذا که خورد به خواب امیخی فرو رفت ساعتی بعد، صدای وزوز زنبور اونو از خواب بیدار کرد پل بر روی رودخونه ساخته شد و مقابل چشمهای ناباور پتریس خود نمایی میکرد پتریس با خوشحالی فریاد کشید خدایا خدایا متشکرم از شما دوستان خوبم هم تشکر میکنم خدایا ممنون بعد خبر ساخته شدن پل به گوش پادشاه رسید پادشاه با نابابری و سراسیمگی به دیدن پل اومد باز هم در شگفتی به فکر فرو رفت و دستور داد انعام خوبی به پتریس بدن و ارباب تم... کار رو مجبور کرد تا تمام دست مزد پتریس رو یجاب پردازه و ارباب بدجنس هم مجبور به اجرای دستور پادشاه شد. افثانه زیبای ارباب و نوکرش رو از سرزمین ارمنستان براتون نقل کردم. در این افسانه به پیوند مردم زحمتکش که پتریس نوکر نمادی از اونه با نیروهای ناشناخته اشاره شده بود. و این نکته شایان توجهه که طبقات مرفه جوامع از وجود این نیروها آگاهی ندارند و با اونها بیگانن. در افثانه نوکر و اربابش همچنین به چگونگی شکل توان و قدرت بزرگ در صورت استفاده صحیح از نیروهای بظاهر کوچک و بیارزش مثل موچه، زنبور و کبوتر اشاره شده و افراد راحت طلب مثل ارباب بنابر ماهیت زندگی و دیدگاهشون این نیروهای بظاهر ساده و بیارزش رو نمیشناسند و نمیتونن با اونها پیوندی برقرار کنند. در افسانه نوکر و اربابش ارباب نمادی از ظلمی که با صفات پول دوستی همراهه و مورچه نمادی از قناعت و کوشش خستگی ناپذیر و کبوتر هم نشانهای از آگاهی که در افسانه‌ها و قصه های گوناگون شاهدون هستیم مه کار مشترک بود از نویسنده و سردبیر زینت سال فور ویرااستار بهار گیوییان اجرا مهران دوستی که بهرام زاد تهیه زهرا بدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود